بسم الله الرحمن الرحیم اصحاب یک دوم دو یک چهارم یک کسر دادیم و همچنین دو سوم رو الان رسیدیم به اون گروهی که یک سهمشون هست والثلث فرض الامی حيث لا ولد ولا من الاخوه جمع ذوات میفرماید سولس یک سوم سهم و فرض دو گروه هست یک سهم مادر هست لا ولد زمانی که میت فرزند نداشته باشه زمانی که میت فرزند نداشته باشه ولا من الاخوه جمع ذو عدد وخاهر برادر هم نداشته باشه البته اگر یکی داشته باشه اشکالی نداره ولی بیش از یک نفر خواهر و برادر میت نداشته باشه ولا من الاخوه جمع ذو عدد و نداشته باشد از خواهر و برادر جمع دارای تعداد جمع در میراث از دو شروع میشه پس اگر شخص صفوت کرد یک مادر داشت با یک پدر با یک برادر اینجا سهم مادر یک سیفون هست ولی اگر دو برادر داشت سهمی مادر میره یک شیشون میشه خودش میگه جمعه چی هست کثنین او سنتین او سلافین حکم و ذکوری فیهی کل اینافی. مانند دو یا سه حکم مذکر مثل موننسه یعنی چ اون خواهر چه میت بیش از یک برادر داشته باشه چی بیش از یک خواهر داشته باشه فرقی نمیکنه. با هم اند. در این حالت مادر اگر بیش از یک نفر خواهر یا برادر داشت مادر میبرد یک ششم اگر یک برادر داشت یا یک خواهر داشت مادر میبرد یک سپم خب اینجا آورده کثنین او ثنتین او ثلاثی اینجا این نقطه رو هم توضیح بدم کثنین یا کثنین اثنین مسنای مذکر است اما اثنتین مسنای موننس است متوجه شدید پس چه دوتا برادر داشته باشه معیت چه دوتا؟ خواهر داشته معیت داشته باشه یا تا اینا رو که داشت دیگه مادر اون موقع یک سوام نمیبره خب این دو با باهم معنی میکنم که معنیش روان بشه میگو سلس فرض و الام حیث و لا ولد و لا بین الاخوت جمعون دو عدد که ثنین و ثنتین حکم ذکوری فیه کل اینا سلس سهمیه مادر است جایی که میت ولد نداشته باشد فرزند نداشته باشد و همچنین از برادر و خواهر جمع دارای تعداد نداشته باشد مانند دو برادر یا دو خواهر یا ستا با بالاتر. حکم مزکر و موننس اینجا با هم است فرقی ندارند ولا والا ابن معه اوین بنته ففر الثلث سو کمه بازم ادامه بحث مادره میگه میت ولد نداشته باشه که یک سوم باشه و همتونین ابن ابن نداشته باشه چون ابن ابن همون حکم ولد دیه پسر پسر یا دختر پسر نداشته باشه پس میت نه خودش فرزند داشته باشه و نه فرزند پسر فرزندای دختری داستانشون متفاوته فرزند پسر نداشته باشه چون اونو نیستند برنیسه ففرض هثلثو که ما تو در این حالت یعنی زمانی که میت نه فرزند داشته باشه نه فرزند پسر داشته باشه و نه خواهر و برادر بیش از یکی داشته باشه در این حالت ففرض هثلثو که ما تو سه میاش یک سوم از مان تورکی بیان کرد و ان یکن زوج و ام و اب فثلث الباقی لها مرته اگر یک مسئله ای رو اینجا بیان میکنه که از این قاعده کلی هم استثناء است میگه اگر و زوج و و اب شوهر بود مادر بود و پدر یعنی زنی فوت کرد یک شوهر داشت یک مادر و یک پدر. فثلث الباقی لها ها مرتب یک سوم باقی مرتبا مال مادر است. یک سوم از کل مال نه، یک سوم از باقی مال چطور؟ دقت داشته باشید. ما اینجا داریم شوهر. مادر و پدر اگر طبق معمول تقسیمش کنیم یک دوم دو میبره شوهر یک سوم سو میبره مادر باقی مانده میشه مال پدر اینجا ما دو مخرج داریم یک دوم دو و یک سوم سو دو و سه با هم تبایونند ضرب میشن سه دوتا میشه 6. اصل مسئله رو از شیش میگیریم ستار رو میدیم یک دومش دو که میشه مال شوهر ستار رو میبره از تا. یک سفوم مادر میبره از ششتا که میشه دوتا یکی دیگه باقی میمونه میره برای پدر خب این روال عادیه حل مسئله هست اما از اون جایی که زمانی که مزکر و معنیس در یک درجه بودن با هم بودن مزکر دو برابر معنیس میبره اینجا در ابتدا و اول بار این مسئله رو عمر رضی الله عنه چون حل کرد که گفت اگر از کل مادر رو یک سیبون بدیم خب از پدر بیشتر میبرد میایم ابتدا سهم شوهر رو جدا میکنیم بعدش سهم مادر رو س... از باقی مانده یک سیبون بشمیدیم در این صورت دیگه پدر دو برابر گلیش میاد و همین کار رو کرد یعنی چطور کرد مادر و پدر رو عصبه قرار داد لذکره مثل حد الانسیعین شوهر سهمش رو جدا کرد خب مسئله رو میگریم از دو سهمیه شوهر یک دومه به شوهر میدیم یک یکی دیگه باقی میمونه قابل تقسیم نیست چون مادر رو یک نفر حساب میکنیم پدر رو دو نفر میشن سه نفر سهمی که برایشون باقی مونده یکه نصیبشون یکیه اینجا چه کار میشه تصحیح نیاز می میشه تعداد میبینیم سه نفر هست سه رو زر در اصل مسئله میکنیم که دو هست سه دوتا میشه 6 مسئله رو از تصیح شد از 6 تقسیم بر یک دوم ستا رو میدیم به شوهر سه تا دیگه باقی میمونه لذکره مثل حضر دو دوتا رو میدیم به پدر و یکی رو میدیم به مادر پس در ادامه بحث مادر میگه و این یک زوجون و امون و اعبه اگر در یک مسئله شوهر و مادر و پدر قرار گرفتند در این حالت یک سوم باقی مال به مادر داده میشه یا به عبارتی مونی یک شیشم ولی به خاطر این که قرآن گفته یک سیوم به خاطر تعدب با قرآن اومدن بهشت گفتن مادر یک سیوم میبره دیگه زمانی که بچه نداشته باشه میت و خوهر برادر به خاطر این عدب این یک سیوم راحت باشه دیگه بشت نگفتن یک شیشم بلکه بشت گفتن یک سیوم به با باقی حالا این بریم جلوتر وهكذا هاكذا بس اين مسألة عمريةين دوتا مسألة هستن يكيش همين بود شون انا در زمان فاروق عمر روخ دادن اين يك مسألة اول اما مسألة دوفم چهست و هاكذا مع زوجة فصائدن فلا تكن عن العلوم قاعدة ميغوه همچنين زمانك در يك مسألة پدر بود مادر بود وزوجة بود زن بود زن میت حالا چیه کی باشه فصائدن چه بیشتر تا چارتا میگه اینجا هم در این مسئله هم مادر یک سوم باقی مانده مالو میبره نه یک سفهمه کل مالو فلا تكن عنیل علومی قاعدن ننشین از علوم یعنی بلند شو علمو حاصل کن تلاش کن خب در این مسئله هم می بینیم زوجه یک چارم می بره مادر یک سفوم کل مالو بهش می دادیم عادی حلش می کردیم یک بهش می دادیم اون یک چارم این یک سفوم سه و چار با هم دیگه مخرجت تبایون هم سه چارتا می شد از دوازده که بگیریم سه تارو می بره زوجه چارتا رو می بره مادر پنجتا تا برای پدر که سهم پدر دو برابر مادر نیست لزا اومدن چکار کردن زوجه رو یک چهاروم میبره ابتدا بهش دادند یک سه تای دیگه باقی مونده از این سه تای باقی مانده مادر اومدند یک سه ومو دادن که یکی به مادر دادن دو تا رو به پدر پس مسئله رو اصل مسئله رو از چار گرفتن یعنی مخرج سهمیه زوجه سه تای دیگه باقی مونده لذکره مثل حضل اون کردند کردن دوتا رو دادن به پدر و یکی رو دادن به مادر بحل این صحبیه مادر رو اینجا گفت پس مادر یک سوم میبره ولی در این دو مسئله یک ثومه کل نمیبره بلکه یک سوم باقی منده مال میبره زمانی که این افراد در مسئله موجود بودن که کاملا توضیحش داریم خوب یک سوم پس سهمیه مادر بود با این شرایطی بیان کرد و هو و همچنین یک سوم مالکی است لثنین او اثنتین من ولد الام بغیر مینی و همچنین یک سوم سهمیه دو برادر یا دو خواهر از فرزندان مادر است بدون کسب بدون مائنه یعنی حکمت درستی استین. بله. پس اگر میت مرد دوتا برادره مادری داشت یا دوتا برادره خاهری داشت. البته با ادامه بیتو بخونیم بهتره. و هاکذا ان کثرو او فما لهم فيما سواه زادو و يستو الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المصدور. از به 48 تا این فرزندان مادر رو توضیح میده یعنی برادران و خواهران مادری میت رو حالا دقت داشته باشید میگه که و یک سیوم و هو برمیگرده به سلس و یک سهم هست برای کی برای دو برادر یا دو خواهر از فرزندان مادر به عبارتی برادران و خواهران مادری چه دوتا باشند در ادامه به بای بیت بعدی میگه و هکذا انکسو اگر و, و همچنین یک سوم سهم فرزندان مادر است اگر بیش از دوتا بودند برای فرزندان مادر سهمی بیش از یک سوم وجود ندارد فمالهم فيما سواه زادو بیشتر از این سهمیه ندارند و یستوی الاناث و زنان و مردان در این رابطه با هم مصاواند بال فرزندان مادر یاهمون خواهران و برادران مادری در یک سوم با هم مصابیان. این اینطور نیست که برادران دو برابر خواهران ببرند یعنی شخصی فوت کرده مادر دارد و دو برادر مادری دارد اون شخص و دو برادر دو خواهر مادری داره با دو برادر مادری خب اینجا مادر سهمی خودشو میبره یک سوم و این چهارتا میبرند به شکل مساوی یکی از فرقهایی که فرزندان مادر با برادر و خواهران پدری و شقیه دارن همینه اونا اگر برادر و خواهر با هم قاتی بشند برادران خاهران رو عصبه میکنند ولی برادران و خواهران مادری همدیگه رو عصبه نمیکنند و به شکل مساوی مالو یک بینشون تقسیم میشه و یستوال ایناس و ذکور زنان و مردان با هم مصاویند کما قد اوضا فیهی یعنی در رابطه با فرزندان مادر اولاد ام کمون برادران و خاهرانه میتند کما قد اوصح اوضح المستور همانطور که قرآن واضح اینو بیان کرده است. خوب پس ما یک سفمو توضیح دادیم که یک سفم سهمیه ی. یک سفم سهمیه ی. مادر هست زمانی که فرزند نداشته باشه میت و همچنین زمانی که بیش از یک برادر یا خواهر نداشته باشه و همچنین یک سوم سهمیه فرزندان مادر است به عبارتی برادران و خواهران مادری میت زمانی که بیش از یک نفر باشن سهمیهشون یک سوم است اگر کمتر از یک نفر دو نفر باشند یعنی یک نفر شخصی مرده یک برادر مادری داره یا یک خواهر مادری داره در این حالت یک شیشم میبره ولی بیش از یک نفر که باشند اون موقع سهمیشون چه هست؟ سهمیشون یک سوم هست خاطر این که دیگه اینجا شرط رو هم میگم مادر شرایط البته مادر رو گفتیم مادر یک میت فرزند نداشته باشد دو بیش از یک نفر برادر و خواهر نداشته باشه میت سه یکی از مسئله غراوین نباشه این عمریتنی که گفتیم برادران مادر هم به سه شرط یک سوم میبرند بیش از دو نفر باشند اگر یک نفر باشند یک میبره بس بیش از یک نفر باشند یعنی دو به بالا باشند میت فرع وارث نداشته باشه فرزند نداشته باشه در این حالت اصلا فرزندان مادر غیرز نمی برند سه میت پدر نداشته باشه پدر بزرگ نداشته باشه اصل وارث نداشته باشه خب این بود یک سوم. انشالله یک ششم رو در دست جداگانه توضیح بدن بهتره است